مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد و دفتر پنجم، شه سوم الدین که نور انجام است طالب آغاز سفر پنجم است ای ضیاء الحق حسام الدین راد استادان سفار اوستاد استاد نبودی خلق محجوب و کثیف ور نبودی حلق ها تنگ و ضعیف در مدیحت داد معنا دادم غیر این منطق لب آدمی لیک لقمه باز آن سعوه نیست چاره اکنون آب و روغن کردنیست مده تو حیف است با زندانیان گوی من در مجمع روحانیان شرح تو غبن نست با اهل جهان همچو راز عشق دارم در نهان مد تعریف است و تخریق هجاب فارغ است از شرح و تعریف آفتاب ماده خورشید مداه خد است که دوچشمم روشن و نامرمد است زم خرشید جهان زم خد است که دو چشمم کور و تاریک و بد است تو ببخشا برکس کندر جهان شد حسود آفتاب کامران تاندش پوشید هیچ از دیدهها و وستراوت دادن پوسیدهها، یا زنور نور بیهدش تانند کاست یا بدفع جاه او تانند خواست هر کسی کو حاسد کیهان بود آن حسد خود مرگ جاویدان بود قدر تو بگذشت از درک عقول عقل اندر شرح تو شد بالفضول گرچه عاجز آمدین عقل از زبان عاجزانه جنبشه باید دران ان شیعا کله لا یدرکو اعلمو ان کله لا یدرکو گرچه نتون خورد طوفان صحاب کی تون کردن به ترک خورد آب راز را گرمی نیاری در میان درک ها را تازه کن از قشر آن. نوتق ها نسبت به تو قشر است لیک. پیش دیگر فهمها مغز است نیک. آسمان نسبت به عرش آمد فرود. ورنه بس عالی است سوی خاکتود. من بگویم وصف تو، تا ره پیش از آن کس فوت آن حسرت خورند نور حقی و به حق جذاب جان خلق در ظلمات وهمند و گمان شرط تعظیم است تا این نور خش گردد این بیدیدگان را سرمکش نور یابد مستعد تیزگوش، کونه باشد عاشق ظلمت چموش، سوست چشمان که شب جولان کنند، کی تواف مشعله ایمان کنند. نکته های مشکل باریک شد، بند طبعه که زدین تاریک شد. تا برا راید هنر را تار و پود. چشم در خورشید نتواند گشود همچون نخل بر نیارد شاخها کرده موشانه زمین سوراخها چهار وصف است این بشر را دل فشار چار عقل گشته این چهار تفسیر خوز عربعتن من تیر فسرحن علیکه تو خلیل وقتی ای خورشید هش این چهارت یار رهزن را بکش زان که هر مرغی از اینها زاغوش هست عقل عاقلان را دیدکش. چار وصف تن چمرغان خلیل، بسمل ایشان دهد جان را سبیل، ای خلیل، اندر خلاص نیک و بد، سر ببرشان تا رهد، پاها ز سد، کل و جملگان اجزای تو، که هست، پاشان پای تو، از تو عالم روحزاری می شود پشت صد لشکر سواری می شود زان که این تن شد مقام چهارخو نامشان شد چهار مرغ فتنجو خلق را گر زندگی خواهی ابد سر ببرزین این چهار مرغ شوم بد بازشان زنده کن از نوع دیگر که نباشد بعد از آن زیشان زرر چهارمرغ مرغ معنوی راهزن زن در دل خلقان وطن چون امیر جمله دلهای سوی اندر این دور ای خلیفی حق تویی، سر ببر این چهار مرغ زنده را سرمدی کن خلق ناپاینده را بد و تاووس است و زاغ است و خروس، این مثال چار خلق اندر نفوس. بد حرس است و خروس آن شهوت است، جاه چون تاووس و زاغ امنیت است. منیتش آن که بود امید ساز، تامع تعبید یا عمر دراز، بد هر آمد که نولش در زمین در تر و در خشک می جوید دفین یک زمان نبود معطل آن گلو نشنود از حکم جز امر کلو همچو یغماجیست است خانه میکند زود زود انبان خود پر میکنند اندرانبان می فشارد نیک و بد دانه های در رو حبات نخود تا مبادا یاغی آید دگر می فشارد در جوال او خشکتر وقت تنگو فرصت اندک او مخوف در بغل زد هر چه زودتر بی وقوف اعتمادش نیست بر سلطان خیش که نیارد یاغی آید پیش، لیک مؤمن ز اعتماد آن حیات میکند کند غارت محل و با آنات. ایمن است از فوت و از یاغی که او می شناسد قهر را بر ادو ایمن است از تا تاشان دگر که بیایندش مزاحم سرف عدل شهر را دید در ضبط حشم که نیارت کرد کس بر کس ستم لاجرم نشتابد و ساکن بود از فوات حز خود آمن بود پس تعنی دارد و صبر و شکیب چشم سیر و معصر است و پاک جایب کین تعنی پرتو رحمان بود وان شتاب از حزه شیطان بود زانکه شیطانش بترساند ز فقر بارگیر صبر را بکوشد به عقر از نوبی بشنو که شیطان در وعید می کند تهدیدت از فقر شدید تا خوری زشت و بری زشت از شتاب نه مروت، نه تعنی، نه سواب لاجرم کافر خورد در هفت بعد دین و دل باریک و لاغر زفت بعد. در سبب ورود این حدیث مصطفی صلوات الله علیه که الکافر و فی سبعت امآین و المومن و یعکل و فی, و یعکل و فی واحدن کافران <تصفح> مهمان پیغمبر شدند وقت شام ایشان به مسجد آمدند کامدیم ای شاه ما اینجا قنق، ای تو مهماندار سکان افاق، بی و رسیده ز دور، هین بیافشن بر سر ما فضل و نور. گفت ای یاران من قسمت کنید که شما پر از من و خوی منید. پر بود اجسام هر لشکر ز شاه زون زننده تیغ بر عدای جا تو به خشم شاه زنی آن تیغ را ورنه بر نبر اخوان چه خشم آید تو را بر برادر بی گناه میزنی، عکس خشم شاه گرز دهمنی شه یکی جان است و لشکر پر از او روح چون آب است و این اجسام جو آب روح شاه اگر شیرین بود جمله جوها پرز آب خوش شود که رعیت دین شه دارند و بس این چونین فرمود سلطان عبس هر یکی یار یکی مهمان گزید. در میان یک زفت بود و بیندید. جسم زخم داشت کس او را نبرد ماند در مسجد چو اندر جام درد مصطفی بردش چو وا ماند از همه هفت بز بود شیرده اندر رمه که مقیم خانه بودندی بوزان بهر دوشیدن برای وقت خان نان و آش و شیر آن هر هفت بوز، خورد آن بو قهد اوج ابن روز جمله اهل بیت خشمالو شدند که همه در شیر باز تامه بودند تبلی تبلیخار همچون تبل کرد. قسم هجده آدمی تنها بخرد. وقت خفتن رفت و در حجره نشست پس کنیزک از غضب در را ببست. از برون زنجیر در را درفگند که از او بود خشمگین و دردمند. گبر را در نیمه شب یا سابه چون تقاضا آمد و درد شکم از فراش خیش سوی در شتافت دست بر در چون نهاد او بسته یافت در گشادن هیله کرد آن هیله ساز نو نو او خود نشد آن بند باز شد تقاضا بر تقاضا خانه تنگ ماند او حیران و بی درمان و دنگ حیله کرد او به خواب اندر خزید خیشتن در خواب در ویرانه دید زان ویرانه بود اندر خاطرش شد به خواب اندر همانجا منظرش خیش در ویرانه خالی چودید، او چنان محتاج اندردم برید. گشت بیدار و بدید انجام خواب، پرحدست دیوانه شد از استراب. زندرون او برآمد آمد ست خروش، زینچونین رسوایی بیخاک پوش، گفت خوابم بدتر از بیداریم که خورم اینسو و آن سو میریم بانگ میزد و واسوبور همچنان که کافر اندر قر گور منتظر که کی شود این شب بصر تا براید در گشادن بانگ در تا گریزد او چتیره از کمان تا نبیند هیچکس کس او را چنان قصه بسیار است کوته می کنم باز شد آن در رهید از درد و غم در حجر گشادن مصطفی علیه السلام بر مهمان و خود را پنهان کردن تا او گشاینده را نبیند و خجل نشود و گستاخ بیرون رود. مصطفی صبح آمد و در را گشاد. صبح آن گمراه را او راه داد. در گشاد و گشت پنهان مصطفی. تا نگردد شرمسار آن مبتلا تا برون آید رود گستاخ او تا نبیند در گشارا پشترو یا نهان شد در پس چیزی و یا از ویش پوشید دامان خدا سبغت الله گاه پوشیده کند پرده بیچون بران ناظر تند تا نبیند خاسم را پهلوی خیش قدرت یزدان از آن بیش است بیش مصطفی میداد داد احوال شبش لیک مانع بود فرمان ربش تا که پیش از خبت بکشاید رهی تا نیفتد زان فضیحت در چهی، لیک حکمت بود و امر آسمان تا ببیند خیشتن را او چنان بس عداوت ها که آن یاری بود بس خرابی ها که معماری بود جامخواب پرحدس را یک فضول قاسدن آورد در پیش رسول که چونین کرده است مهمانت ببین خنده زد رحمتا للعالمین که بیار آن مدهره اینجا به پیش تا بشویم جمله را با دست خیش هر کسی میجه است که از بحر خدا جان ما و جسم ما قربان تو را ما بشوئیم این هدث را تو بهل کار دست استین نمد نه کار دل ایل امرک مر را حق عمر خواند پس خلیفه کرد و بر کرسی نشاند ما برای خدمت تو میزییم چون تو خدمت میکنی پس ما چی؟ گفت آن دانم ولی این ساعت است که در این شستن بخیشم حکمت است منتظر بودند که این قول نبی است تا پدید آید که این اسرار چیست او بجد می شست آن اهداس را خاص زمر حق نه تقلید و ریا که دلش می گفت که این را تو بشو که در اینجا هست حکمت تو به تو سبب رجوع کردن آن مهمان به خانه مصطفی علیه السلام در آن ساعت که مصطفی نهالین ملوث او را به دست مبارک خود می شست و خجل شدن او و جامع چاک کردن و نوحه او بر خود و حال خود کافرک را هیکل بود یادگار یا دید آن را و گشت او به قرار. گفت آن حجرک شب جا داشتم هیکل آنجا به خبر بگذاشتم. گرچه شرمین بود شرمش هرس برد. هرس اجدرهاست، نه چیزیست خورد از پای حیکل شتاب اندر دوید در بساق مصطفی وان را بدید یاد یدالله آن حدس را هم بخد خوش همی شوید که دورش چشم بد حیکلش از یاد رفت و شد پدید اندرو شور گریبان را درید میزد و دو دست را بر رو و سر کله را میکفت بر دیوار و در آنچنان که خون زبینی و سرش شد روان و رحم کرد آن مهترش نره زد خلق جمع آمد بر برو گبر گویان ای یوهن ناس احزرو میزدو بر سر که ای بی عقل سر میزدو بر سینه که بی نور بر سجده میکرد او که ای کل زمین شرمسار است از تو این جزو مهین تو که کلی خوزه امر ویی من که جزوم ظالم و زشت و غوی تو که کلی خار و لرزانی زهق من که جزوم در خلاف و در سبق هر زمان می کرد رو بر آسمان که ندارم روی ای قبل جهان چون زهت بیرون بلرزید و تپید مصطفیش در کنار خود کشید ساکنش کرد و بسی بنواختش دیدش بکشاد و داد اشناختش تا نگیرید ابر کی خندد چمن تا نگیرید تفل کی جوشد لبن تفل یک روزه همی داند طریق که بگیریم تا رسد دای شفیق. تو نمیدانی که دای دایگان کم دهد به گریه شیر او رایگان. گفت فلیبکو کسیرن گوش دار تا بریزد شیر فضل کردگار. گریه ابرست و سوز آفتاب استن دنیا همین دو، رشتتاب گر نبودی سوز مهر و اشک ابر کی شدی جسم و عرز زفت و ستابر کی بودی معمور این هر چار فصل گر نبودی این تفو وین گریه اصل سوز مهر و گریه عبر جهان چون همه دارد جهان را خوش خوشدهان آفتاب عقل را در سوز دار. چشم را چون ابر اشک دار. چشم گیریان بایدت چون تفل خورد. کم خور آن نان را که نان آب تو برد تن چوبابرگ است روز و شب از آن شاخ جان در برگ ریز است و خزان برگتن بی برگی جان است زود این بباید کاستن آن را فزود اقرز الله ده زین برگتن تا بروید در عوض در دل چمن ده کم کن از این لقمی تند تا نماید لا و راعت. تنز سرگین خیش چون خالی کند. پرز مشک و در اجلالی کند. این پلیدی بدهد و پاکی برد. از یوته کم تن او برخورد. دیو میترساندت که هین و هین، زین به شیمان گردی و گردی هزین گرگزاری زین حوزها تو بدن بس په شیمان و غمین خواهی شدن این بخور گرم است و داروی مزاج وان بیاشام از پای نفع و علاج هم بدین نیت که این تن مرکب است آنچه خو کرده است، آنش اسواب است. هین مگردان خو که پیش شاید خلل در دماغ و دل بزاید صد علل. این تهدیدها آن دی بدون آرد و خلق خاند صد فسون. خیش جالی نو سازد در دوا، تا فریبت نفس بیمار تو را. کین تو را سود است از درد و غمه. گفت آدم را همین در گندم پیش آرد هی هی و هی هات را. وزلویشه پیچد و لبهات را. همچون لبهای فرس، در وقت نال تا نماید سنگ کمتر را چو گوش گوشهایت گیرد و چون گوش اسب میکشاند سوی حرس و سوی کسب برزند بر پات زشت زشتباه که بمانی تو ز درد آن زرا نال او هست آن تردد در دو کار این کنم یا آن کنم هین هوش دار آن بکن که هست مختار نبی آن مکن که کرد مجنون و سبی حفت جنت بچه محفوف گشت بلمکاره که از او افزود کاشت؟ سد فسون دارد زهیلت وزده ها که کند در سله گره هست اجده ها. گر بود آب روان بر بنددش ور بود حبر زمان بر اقل عقل را با عقل یار یار کن، امرهم هم شورا بخان و کار کن.